حکایت، یکی در مسجد سنجار به تطبع بانگ گفتی، به عدایی که مستمعان را از اون نفرت بودی، و صاحب مسجد امیری بود، عادل نیک سیرت، نمیخواستش که دل آزرده گردد، گفت، ای جوان مرد، این مسجد را معزنانند قدیم، هر یکی را، پنج دینار مرتب داشتم، تو را ده دینار میدهم تا جایی دیگر روی، بر این قول اتفاق کردند و برفت، پس از مدتی در گذری پیش امیر باز آمد، گفته خداوند بر من حیف کردی که به ده دینار از آن بقعه بدر کردی که اینجا که رفته ام هم دینارم همیده هند، تا جای دیگر روم و قبول نمی کنم. امیر از خنده بیخود گشت و گفت زن تا نستانی که به پنجاه راضی کردند. به تیشه کس نخراشد زروی خارا گل چنان که بانگ درشت تو میخراشد دل.